بر کوب پست که از نمک دریاب و سیاهی شبانگاهی سرشار بود بازی استادیم تکیده زبان در کام کشیده از خود رمیدگانی در خود خزیده به خود تپیده خسته نفس نشسته به کردار از راه مندگان. در ظلمت لبشور ساحل به هجای مکرر موج گوش فرادادیم و در این دم سایه طوفان اندک اندک آینه شب را کدر می کرد در آوار مغرورانه شب آوازی برآمد که نه از مرغ بود و نه از دریا. و در این هنگام زورقی شگفتانگیز با کناره بی ثبات محالود پهلو گرفت که خود از بستر و تابوت آمیزهی وهمنگیز بود همه حاکمیت بود و فرمان بود که گفتی پربای بی تابی سیما موج و خیزابش نیست نزورقی بر گستره دریا که پنداشتی کوهیست استوار به پهنه دشتی و در دل شب غیرین چندان به سراحت آشکار بود که فرمان ظلمت را پنداشتی در مقام او اعتبار نیست و چالاک به دنگونه میخزید که تابوتی است پنداشتیش بر هزاران دست پس پدرم زورقبان را آواز داد و او را در صدا نه امیدی بود و نه پرسشی پنداشتی که فریادش نه خطابی که پاسخی است و پاسخ زورقبان را شنیدم بر زمینه انواج همهمگر که سریح و برنده به فرمانی میمانست. آنگاه پاروی بلند را که به دا سیمانندهتر بود بر کپ زورق نهاد و بی آنکه به ما درنگرد با ما چنین گفت تنها یکی آنکه که خسته تر است و صخره های ساحل گرد بر گرد ما سکوت بود و پذیرش بود و بر تاس باشگونه از آن پیشتر که سایه طوفان سیغل نیلگونه را کدر کند آرامش و گونه چنان بود که گفتی خود از ازل وسوسه نسیمی هرگز در فواصل این آفاق به, پرده، به پرسگردی بر نخواست است پس پدرم به جانب زورقبان فریاد کرد اینک دو تنی ما هر دو سخت کوفته چرا که سراسر این ناهمواره را به پای در نوشته ایم. خود در شبی این گونه بیگان با سهر که در این ساحل پرد همه چیزی به آفتاب بلند اسیان کرده است باری و از پایان این سفر ما را هم از نخوست خبر بود و این با خبری را معنا پذیر است که دانست و گردن نهاده ایم و به سر بلندی اگر چند در نبردی این گونه مهم و نابشایست به استقامت پای شده ایم چونان با روی بلند دژی در محاصره که به پایداری پای می پشارد دیگر اکنون ما را تا به تحمل خیشتن نیست. قلم رو به سرفرازی ما هم در این ساحل ویران بود دریغا که توان و زمان ما در جنگی چنین این زلت خیز به سرآمد آمد و کنون از آنکه که چون روس بیان وازده با تن خیش هم بستر شویم نفرت میکنیم کنیم و دلازردگی می کشیم در این ویرانه ظلمت دیگر تاب باز مندن من نیست دوراپان دیگر بار گفت تنها یکی آن که خسته تر است دستور چنین است. زورقبان دیگر باره گفت تنها یکی آن که خسته تر است دستور چنین است و پلاس جنده ای را که بر شانه های استخانیش افتاده بود بر سر کشید گفتی از مهی که بر پهنه دریای گندیده بیتاب آماس میکرد، آزار می بود. در این هنگام نگاه من از تار و پود ظلمت گذشت و در رخصاره او نشست و دیدم که چشم خانه هایش از چشم و از نگاه تهی بود و قطره های خون از حفره های تاریک چشمش بر گونه های استخانه وی فرو می چکید و قرابی را که بر شانه زورقبان نشسته بود چنگ و خونین بود و گرد بر گرد ما در موج کوب پست ساحلی هر خرسنگ سکوت و پذیرشی بود پدرم دیگر بار به سخن آمد و این بار دیگر چنان که گفتی او خود مخاطب خیش است کاهش کاهیدن کاستن، از درون کاستن شگفت آمدم که سپاهی مردی است به شمشیر ایار الفاظ را چگونه در سنجش قیمت مفهوم هر یک به محک می تواند زد و او هم از آن گونه با خود بود کاستن، از درون کاستن کاسه کاسهی در خود کردن چاهی در خود زدن چاه و به خیش شدن به جستجوی جوی خیش آری هم از اینجاست فاجعه کاغاز آغاز می شود به خیش اندر شدن و سرگردانی در قلم ظلمت و نیک بختی در دا دردا در دا که آن نیز خود سرگردانی دیگری است در قلم روبی دیگر میان دو قطب همق و بقاهت پس دشنامی تلخ به زبان آورد و فریاد کرد گرچه در این دام چاله تقدیر و سپیددمی نیست از برای آن کس که فاتح جنگی ارزان و بهنامیز است سپید دمان است، بس ازی. شناخته شدن و بر سر دست ها و زبان ها گشتن و قریب خلق که آنک فاتح آنک سردار فاتح که اگر شرم ساریش از خلق نباشد باری با شرم ساری از خود چه تواند کرد لاجرم از آن پیشتر که شب به سپیدی گراید میباید تا از این لجه خوف و پریشانی بگذارم آنگاه به زورق درآمد که آمیزهی وهمانگیز از بستر و تابوت بود و پروای بیتابی سیما باسای موج و خیزابش نه پس پهنه پارو بر تهیگاه آب تکه کرد و زورک به چالاکی بر دریای تیره سرید چالاک و سبکخیز از آن گونه که تابوتی پنداشتیش بر هزاران دست من تنها وو حیرت زده مندم بر موجکوب پست که گرد بر گرد آن هر خرسنگ سکوتی بود و پذیرشی بود و در ظلمت دم افزون ساحل مهگیر که از هجاهای مکرر انواجم امباشته بود چشم بر زورق رعبنگیز دوختم که امیدی از دست جسته را میمانست و به استواری کوهی را ماننده بود بر پهنه دشتی و پروای بیتابی سیماب گونه موج و خیزاوش نه پدرم با من سخنی نگفت حتی دستی به بدا بر نیاورد و حتی به بدا نگاهی به جانب من نکرد کوهی بود گویی یا صخره‌ای پایا بر ساحلی بلند و از ما دو کس آن یک که براب بیتاب دریا میگذشت نه او که من بودم و در این هنگام زور غیل انگر را میمانستم که به سرگردانی جاودانه خیش آگاه هست نیز به دین حقیقت خوفنگیز که آگاهی در لغت به معنی گردن نهادن است و پذیرفتن در آوار مدرورانه شب برآمد که نه از مرغ بود و نه از دریا و بار خستگی توار خود را همه من بر شانه های پرو افتاده خیش احساس کردم اجازه بدید به جای شبانه قریبانه بخونم برات